شاملو این داستان راهب مهربان به نام خدا و با سلام این داستان در دو بدرچینه که سالها قبل در مقالستان زندگی میکردن بعد از راهب های بودایی آواره ای هستند که همیشه از جایی به جای دیگه سفر می کنند و از راه صدقه هایی که مردم به اونها میدن زندگی خودشون رو میگذرونن دو راه دیگه سیما ای با اینکه همیشه به هم یکدیگر بودند و اینجا و اونجا می رفتند ولی اخلاق و رفتارشون خیلی با هم فرق داشت یکی از اونها مهربون و درستکار و دیگری نامهربان و بدجنس بود مردم با راهب مهربون خوشنفتاری میکردند و در عوض به و بداخلاق هیچ توجهی نداشتند به همین خاطر بعد بدرچین بدجنس از دوستش که همیشه بیشتر از اون صدقه و خیرات میگرفت متنفر شد و تصمیم گرفت در اولین فرصت اون رو از بین ببره روزی از روزها دو راهب از راهی کوهستانی عبور میکردند ناگهان صدای جیک و جیک جوجه اقابی رو شنیدند خوب که دقت کردند در بالای پرتگاهی بلند که شیب خیلی تندی داشت لانه اقاب طلایی رو دیدند خبری از اقاب مادر نبود و جوجه تنهای تنها به این دو نگاه میکرد بادرشین بدجنس جنس به دوستش گفت این جوجه اوقا به طلایی خیلی ارزش داره بادرشین مهربون گفت اون خیلی زیباست بادرشین بعد جنس که نقشی در داشت گفت زیبایی اون مهم نیست این جوجه قیمتیه چون شکارچیان همیشه به دنبال چنین پرندگانی هستن تا اونها رو برای شکار تربیت کنن بنابراین ما با به دست آوردن این جوجه ثروتمند خواهیم شد. پس به دوستش پیشنهاد کرد که از صخره‌های بلند و تیز بالا بره و جوجه عقاب رو بگیره و پایین بیاره. بعد چنین نهربن قبول کرد و اون به آرامی از چند تخت سنگ بالا رفت. مگر هم به جای رسید که احتیاج به کمک داشت. بعد چنین شرور مانند نردهونی کنار تخت سنگ ایستاد و دستهاش رو قلاب کرد و گفت پاهات رو روی دست ها و سپس بر شونه من بگذارو و بالا برو. در سادو و مهربون قبول کرد و به سختی خودش رو از سینه بلند سخت بالا کشید. در همین موقع بدرچین برجنس خنده بلندی کرد و گفت بدرود ای دوست و ای رقیب من بدرود. به زودی آقا مادر سر میرسه با تو رو شکار میکنه. شدم نه. اونقدر در اون بالا بمونی تا از تشنگی و گرستگی بمیری و در چیلی نهربون هرچی خواهش و التماس کرد که دوستش اون رو تنها نگذاره و کمکش کنه فایده ای نداشت در کمال ناامیدی اون رو دید که دور میشه و لحظه به لحظه ماننده نقطه ای کوچیک و کچیکتر میشد چاره ای نداشت که همونجا بنشینه و خودش رو به دست سرنوش بسپاره خوشی به بالای آسمون رسیده بود که عقاب طلایی با بالای گسترده و درخشان و پنجه که مثل فولاد آب دیده بود بر فراز لونه فردومد اون حیبون رو شکار کرده بود جلوی جوجش گذاشت و هر دو شروع به خوردن کردند. هنگامی که عقاب آماده میشد تا دوباره به شکار بره راهاد نهربون از فرصت استفاده کرد و پاهای اغاب رو محکم توی دستاش گرفت و هموار اون در آسمان به پرواز دارمد. اغاب دلش به حال اون سوخت، اما بعد از مدتی خسته شد و اون رو نزدیک معبدی دور افتاده و متروکه به زمین گذاشت. شب از راه رسیده بود و بلرچین تشنه و گرسنه به گوشه ای از معبد پناه برد تا شب رو به صبح بیاره. اما نیمه های شب از سرازده هایی که به گوش میخورد بیدار شد آروم از جا بلند شد و ای پنهون شد با تحجب بید که یک ببر، یک گرگ، یک روباه و کلاق سیاهی دوره هم جمع شدند و با زبون آدنی زاد با یک دیگه گفته کن میکنند در حالی که حسابی کنجکاف شده بود به حرفهای اونها گوش میداد ببر از بورک سوال کرد خب امروز چطور بود؟ چیزی هم شکار کردی یا نه؟ گرگ جواب داد روز خوبی بود گوسالهای رو در نزدیک برکه ای که توی جنگله شکار کردم. آخه میدونی در این اطراف تا فرسنگ ها همین یه برکه وجود داره و گله حاکم برای آبخوری به اونجا میاد. ببر گفت نه اشتباه میکنی هیچ کس خبر نداره که در نزدیکی قصر حاکم درست در کنار درختان نارون قرمز یک چشمه وجود داره چشمه که زیر یک تخت سنگ بزرگ پنهون شده اونها اگر بفهمند هرگز گله های خود رو به جنگل نگرن گرگ رو به کلا کرد و گفت تو چی؟ امروز چی خوردی؟ کلا گردنشو کچ کرد و با صدای ضعیفی جواب داد امروز گرست نموندن ولی مهم می میدونی چرا چون فردا حاکم برای سلامتی و بهبودی شازد خانم به درگاه خدا دعا میکنه و قربونی میده اون بعد منم دلی از ازا در میرم گرگ از بعد پرسید چرا برای چی شازده خانم بیمار شده بر جواب داد دو تا انکبوت وارد گوش های خانم شدند و پس از مدتی شونزده تا شدند روبا پرسید، برای بیرون کردن انکبوتا هیچ راهی وجود نداره؟ بعد سریت کنداد و گفت، فقط یک راه. برای این کار باید یک دیگ آب جوش بیرن و بخار آب جوش رو وارد گوش ها بکنن و بعد تبل رو به صدا در بیارن و این نفر با آواز بلند بخونه ای انکبودا بروید. تنها راه معالجه و درمان اون همینه. کم کم هیونا از حرف و گفتگو خسته شدند و خوابیدند. بعد از هم در جایی که خودشو پنهون کرده بود به خواب رفت. صبح زود هنگام طلوع آفتاب هیونا بیدار شدند و معبد رو ترک کردند. بدرشین هم از جا بیرون اومد و به سوی ترس حاکن به راه افتاد. حاکم از بیماری دخترش قمگین و افسرده بود. پرسید با من چیکار داری؟ راهب گفت من اومدم تا دختر شما رو معالجه کنم. حاکم با ناراحتی گفت ولی حکیما و طبیبایی زیادی برای درمان دخترم اومدند و هیچ کدوم نتونستند چاره درد اونو پیدا کنند. راهب گفت بله میدونم. اما فقط من میتونم به اون سلامتی و نشاط ببخشم. حاکم قبول کرد و بدرچین اون شده که از زبان بب شنیده بود با دقت انجام داد وقتی 16 بود یکی یکی از گوش های خانم بیرون اومدن در مقابل چشم های حاکم حال دختر خوب شد و برق شادی در چشم های اون درخشیدن گرفت حاکم از خدمت بزرگی که بدرچین براش انجام داده بود اینقدر خوشحال شد که اون بزرگی به اون هدیه کرد تا در آن زندگی کنه چند روز بعد از بدرسین رو به حضور خودش کند و گفت ای راهب دانا مشکلی دارم آیا میتونی اون رو حل کنیم؟ راهب گفت مشکل چیه جناب حاکن؟ حاکن گفت هر روز که گله من برای خوردن آب به جنگل میره گلگای درشی به اون حمله میکنن و روز به روز از تعداد گله کم میشه به نظر تو چه تدویری باید کنیم؟ راهب به فکر شور رفت و حرفای ببر بیادش اومد اون گفته بود کنار درخت های نارون قرمز در نزدیکی قصر حاکم تخت سنگی وجود داره که زیر اون سنگ چشمی پنهون شده بعد از چی نشونی اون چشمه رو به حاکم داد و از مامورانش خواست سنگ بزرگی رو که کنار درختان نارون بود جابجا جا کنن تا چشمه روان بشه و جللی حاکم مجبور نشه برای خوردن آب به جنگل بره حاکم به اونچه که راهب گفته بود عمل کرد وقتی دید چشمهی صاف و زلالی از زیر تخت سنگ جوشید و بر زمین روان شد خیلی تعجب کرد و خوشحال شد حاکم پول و جواهرات زیادی به بدرچین داد و از اون پس اون رو مشاور خودش کرد روزی راهب به دوست قدیمیش که اون رو در بالای پردگاه ها کرده بود برخورد کرد از دیدن اون خیلی ناراحت شد چون بدرچین شرور لاغر و ضعیف شده بود و لباس پاره و کهنهی به تند داشت و هیچ به اون کمک نمی کرد. دلش به حال اون سوخت اون رو به خونه و دو و لباسی نو به او داد و بدرچین بدجنس بعد از اینکه... دیلی از ازاده را برد، حسابی خورده آشانید، راز خوشبختی دوستش رو پرسید. جاهده دهربان از سیر تا پیاز ماجراهایی که براش اتفاق افتاده بود رو شهر داد. جاهده برد جنس که هنوز مانند گذشته حسود بود، تصمیم گرفت برای خوشبخت شدنش به معبده مطروچ بره. و چه دوستش کرده بود بکنه تا اون هم به اون مقام برسه. بعدای اون روز افتاد و به معبد متروک و خرابه رسید. گوشه از معبد تنهان شد تا شب منتظرمونتا تا حیونات سر بسنن. گوشه شد تیش که حتی صداها رو بهتر بشنده. ببر از گرگ سآل کرد خب امروز چی خوردی؟ گرگ نالهکنون گفت از خوردن نفرش که خیلی گرسنه نستم چون امروز نتونستم چیزی شکار کنم. ببر پرسید چرا؟ گرگ گفت امروز گلنه حاکم به برکه وسط جنگل نه بود بینم بگو از کجا میتونم چیزی برای خودم پیدا کنم ببر که بوی آدمیزاد به مشامش رسیده بود گفت لازم نیست راه دوری بری شکار ما اینجا توی همین معبده بیا بگردیم و پیداش کنی چیزی نگذش که به دنبال بوی آدمیزاد همه جا رو گشتند و در گوشه از معبد با مردی روبرو شدن که از ترس می درسید. اون شب اونها لذیسترین ترین از زندگی خودشون رو خوردند بله عزیزان یادمون باشه که آدم های مهرمون همیشه در دلهای دیگرون جا دارند و براشون عزیزند و آدم های بدجنس و شرور یک روزی یک جایی بالاخره تغاسه کارهای زشت خودشون رو پس خواهند داد متشکرم که که به انتهای قصه با من همراه بودید و امیدوارم به زودی برای شنیدن یکی دیگه از قسطه های, های مردم مقالسان با من همراه باشید مراقب خوبی های خودتون و مهربونیاتون باشید خدای یار نگهدار شما